بیرون با خودم گفتم بهتر نیست دوباره منتظر اتوبوس شب رو بمانم، اما فکر تنها برگشتن به اتاق هتل وحشت به دلم میانداخت. ناگهان محله محلی پرت ارل آن به نظرم دلگیر آمد. شاید به این خاطر که گذشته نچندان دوری را یادم میآورد. با دور شدن سایه پدرم در مسیر من خیال کرده بودم. به پیشواز یک دست سرباز مسئول تیرباران میرود و همه قرارهایمان در آن زمین پشت ساحل از جمله زهیر، لاروتوند و ترمینوس لغو میشوند. شاید نیاز به همراهی هلن نواشین داشتم. با او فکر برگشتن به اتاقم دلنشین بود. و حاضر بودم مسیر را از بین خیابانهای خالی یک شب پیاده گز کنم و حتی بلندتر از مرد شابسکا به سر و مهمانهایش در لکلانگ بخندم برای اینکه جرأت پیدا کنم به خودم می محله محلی پورت ارلان آن قدرها هم دلگیر نیست روزهای تابستان شیر بزرگ برونزی آنجا زیر شاخ و برگ درخت ها نشسته بود و هر بار که از دور نگاهش میکردم حضورش در افق به من قوت قلب میداد شیر نگهبان گذشته و آینده بود و آن شب برایم سر نخ شده بود و به کمکم می آمد. آن بان اطمینان داشتم. تا سنجر من لکس و ها قدمهایم را تند کردم. وقتی به تاخهای هلالی خیابان ریوبلی رسیدم، انگار کسی یک هو از خواب بیدارم کرد. لکلانگ مرد شابسگا به سر که سعی می کرد دختر بور را ببوسد. در امتداد تاخهای هلالی احساس می کردم برگشتم در هوای آزاد. دست چپ، کاخ لوور و آن طرفتر، کاخ تویلری دوران بچگیم. به تدریج که سمت میدان کنکورد میرفتم سعی میکردم حدس بزنم چه چیزهایی در تاریکی پشت نرده های باغ ردیف شدند استخر اول نمایشگاه گلوگیا میدان سوارکاری استخر دوم حالا فقط کافی بود چند قدم بردارم تا هوای دریا را بالا بکشم مستقیم آنته شیری که وسط چهارراه دیدبانی میداد آن شب شهر اسرارآمیزتر از همیشه بود. تا به حال با سکوتیبان آن عمیقی روبرو نشده بودم. حتی یک اتومبیل هم نبود. به زودی به میدان کانکارد می رسیدم. بدون که نگران چراغهای قرمز و سبز باشم، مثل راه رفتن در چمنزار. ولی دوباره در رویا بودم. اما رویایی آرام تر از رویای چند لحظه پیشم در لکلانگ. وقتی داشتم از میدان پیرامید رد می شدم اتومبیل ظاهر شد و با احساس درد در پایم به خودم گفتم دارم بیدار میشم